موزه پاویزی دمدمای قروب گوشه پیاده رو آروم توی خیابون شلوگ ازدم اونگ... یه تابلو که رو شکس یه ستاره قدم میزنم تا اون جایی که پاهم هست داره این خیاله این که فردو چی میخواد بشه هرچی هست بدتر از این که نمیخواد بشه صدای همهمه و صدای راننده تاکسی ها دوتا هتفون تو گوشم میذارم با صدای زیاد یاسر بینام. دارم فکر می کنم توی دل این جماعت پیدا میشه یه ذره جا هم من اما تو خیابونی که این همه آدم دورشه کسی بی تفاوت دنبال کار خودشه یکی دنبال اون میره یکی میدوه پی این یکی خیلی خیلی شادی یکی خیلی خیلی غمگی اگه میخوای که ندیده هاس رو ببینی میخواد جایی بری کافی همینجا بشین شاید هفرین چی که دیدی یا عجیب نیواست یه زوج که اومدن خریده عروسی باشن همه چی آرومه همه خوشحال میخنه امید. که دارن پرونده این دوتارم خوشحال میبنه آفل از این که یکی داره تقصه شو میبینه مم. یه جوون که اگه بگیرین حسشو میمیره باشده فیترین مغازه بای ساده با عرز حلقه استواج عشقشو میبینه درد دنیا واسه همه ما برنامه که تصمیم میگیری دستی و نگیری رو میگردونی که دیگه این تصویر رو نبینی اون پیرزن پیر که بخچه روی شونشه بچه مریضش که توی خونشه دمش استرسه اینو داره آخر شب آل خونه ببنده و پول دوا جور نشه به آقای سر به زیر سمت راست میکنه یه طوری انگار با چشماش ارتماس میکنه اون انقدر بی پول و گنده حتی روش نمیشه به پرس جوراب چنده اما این قصه لباتو به هم میدوزه از اون پدرها که میبینیشون دلت میسوزه دسته یه بچه رو گرفته آروم راه میره اطراف و میبینه و از خجالت آروم میشه هم اینطور که درگیره آب رو و خالی خالیست فکر <تصفيق> به یه گوشه خیرم میشفا میستن یه بابا حالا که دست گرفتی میبری من که بچه خوبی هم یه دونه بستنی میخری پدر آرزو میکنه <تصفيق> که سریب بمیره آزر جیونشو بده و یه بستنی بگیره میگه عزیزم اون جا که صفه نیستی چی اونو دیوونن هوا سرده تو مریض میشی بیا بریم خونه ماما منتظره ها ناراحت میشه اگه نرسیم واسه شا تو که نمیخوای مامانی ناراحت شه از زمان هر دو خونه میدونستم تخونه و عشق چشونه ما که نارا اون که داره یه و گاز میزنه یکیرو پله به گدایی نشسته ساز میزنه نارو میبینم و میگم بیچار خدا دارن منم باید یه روز همین کارو کن فکر کنم هیچ وقت مثل امروز بد به نبودم نمیدونم چی شد درگیر بدبینی شده ریبا این که این دفعه حرفام همه ترش بوده رو شوک بقیه ظاهرا همه خوش بودن. بوده Arrangement. Arrangement. مسؤول. مسؤول. جهانی